حافظوا على الصلوات والصلاه المسقى وقوموا لله قانتین مواظبت کنید بر نمازها و به ویژه نماز میانه و برپا دارید برای الله فروتنانه فا این خفتم فرجالا او ركبانا فإذا اذکر الله كما علمكم فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون پس اگر بیم داشتید آنگاه پیاده یا سواره نماز بخوانید و هنگامی که ایمن شدید آنگاه یاد کنید الله را چران که آموخت به شما آنچرا نمی‌دانستید والذین یتوفون منکم ویدرون ازواجا وصیتا لازواجیهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خج نَ فَ جونَاحلَكُ فيِي م فَ نَفِي أَفوسهَّ مِ مر والله عزيز حك و کسانی که نزدیک است جانشان گرفته شود از شما و بر جای میگذارند همسرانی را بکنند وصیتی را برای همسرانشان به بهرعی تا یک سال بدون بیرون کردن از خانه ولی اگر آن زنان خود بیرون روند آنگاه نیست گناهی بر شما در آنچه کردند در حق خودشان از کار شایسته و الله پیروزمند کار است وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین و برای زنان طلاق داده شده بهرهای است به شایستگی كه لازم است بر پرهیزگاران كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تعقلون این چونین بیان میکند الله برای شما آیه هایش را باشد كه شما خرد بورزید الم <تصفيق> تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحیاهم إن الله لذو فضل علا الناس لا آیا ننگریستی به کسانی که بیرون رفتند از خانه هایشان حالان که آنها هزاران تن بودند از بیم مرگ پس گفت به آنان الله بمیرید سپس زنده کرد آنها را همانا الله قطعاً دارای بخشش بزرگ است بر مردمان ولی بیشتر مردمان سپاس نمیگذارند وقاتلوا فی سبیل الله واعلمو ان الله سمیع علیم و بجنگید در راه الله و بدانید همانا الله شنوای داناست من ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کیست آنکه وام دهد الله را وامی نیکو تا بی افساید آن را برایش؟ چند برابر بسیار و الله هست که تنگ میکند و گشایش میدهد روزی را و به سوی او بازگردانده میشوید